ماهیت حقیقی زمان و مکان به این نکته توجه کن اگر چیزی جز سکوت وجود نمی داشت آنگاه سکوت برای تو وجود نداشت یعنی تو نمی توانستی آن را درک کنی تنها هنگامی که صدا به وجود می آید سکوت نیز معنا پیدا می کند به همین شکل اگر فقط فضای خالی و یا مکان بود و اشیای درون آن نبود مکان برای تو وجود نمی داشت خود را به عنوان آگاهی تصور کن که در فضای لایتناها سیر می کنی. نه ستاری هست، نه کهکشانی، فقط خلاه هست و فضای خالی. ناگهان احساس می کنی که فضای خالی دیگر وسیع نیست، اصلاً وجود ندارد. حداقل دو دون لازم است تا مکان یا فضای خالی وجود پیدا کند. مکان یا فضای خالی زمانی وجود پیدا می‌کند که یک دو می‌شود و آنگاه دو ده هزار چیز دیگر می‌شود بدین سان با افزایش چیزها فضای خالی یا مکان نیز وسعت می بنابر این جهان و فضای خالی با هم ظهور می‌کنند هیچ چیز نمی تواند بدون مکان یا فضای خالی باشد. با وجود این فضای خالی یا مکان خود چیزی نیست. پیش از آن انفجار بزرگ یا بیگ بنگ فضای خالی لایتناهایی نداشتیم که منتظر اشیا باشد. مکانی نبود همانطور که چیزی وجود نداشت. آنگاه فقط ذات غیر متجلی هستی بود. آن یگانه. در وحدت محض قنوده بود وقتی آن یگانه یعنی ذات احدیت در هزاران هزار چیز یعنی کسرات پدیدار شد ناگهان مکان هویدا شد و به چیزها مجال ظهور و بروز داد مکان از کجا آمد آیا توسط خداوند آفریده شد تا جهان را در خود جای دهد البته که نه فضای خالی هیچ چیز است بنابراین هیچ چیز چیزی نیست که آفریده شده باشد. در شبی که آسمان صاف و است، بیرون برو و به آسمان نگاه کن. هزاران هزار ای که میبینی قطره است در دریای بیکرانه هستی. قویترین تلسکوپ های جهان توانستند تنها صد میلیارد کهکشان را رسد کنند. در هر کهکشان میلیاردها ستاره وجود دارد آنچه که حیرت زاتر است فضای لایتناهایی است که این همه ستاره و کهکشان را در خود جای داده است هیچ چیز شگفتانگیزتر از وسعت بیکرانی نیست که میتواند بی نهایت چیز را در خود جای دهد با وجود این چیست این وسعت بیکرانه تهیت محض و بیکرانه ظهور ذات غیر متجلی هستی آنچه ما توسط ذهن و حواس خود به عنوان مکان می شناسیم، چیزی نیست مگر ظهور ذات غیر متجلیه هستی معجزه بزرگتر این است آن وسعت و جرفایی که به جهان مجال بودن می دهد، چیزی نیست که فقط در بیرون باشد بلکه در درون تو نیز هست وقتی کاملا حضور پیدا می کنی آن وسعت بیکرانه را به عنوان جرفای خاموش بی ذهنی در درون خیش مشاهده میکنی. این وسعت در درون تو از لحاظ ژرفها بیکرانه است نه از لحاظ طول و عرض. وسعت مکانی در نهایت چیزی جز تصور غلط از جرفای بیکرانه نیست. جرفای بیکرانه صفت ذات متعالی است نه صفت مکان. بر اساس نظر انیشتن مکان و زمان از هم جدا نیستند من معنای مطلب را نمیفهمم اما گمان میکنم منظور او آن بوده که زمان بعد چهارم مکان است او این بعد را کوانتوم مکان زمان نامیده است آری آنچه تو به عنوان زمان و مکان بیرونی تصور میکنی چیزی جز خیال نیست اما در این خیال نیز حقیقتی نهفته است زمان و مکان تجلی بیرونی صفاتی از صفات خداوندند بیکرانگی و جاودانگی در درون تو مکان و زمان معادلی دارند که ماهیت حقیقی آنها و خود تو را آشکار می کند. معادل درونی مکان در تو سکون و جرفای بیته بی, بی نیست. معادل درونی زمان در تو حضور است بیداری نسبت به لحظه جاودانه اکنون فراموش نکن که بین این دو جدایی وجود ندارد هنگامی که مکان و زمان را به عنوان تجلی ذات غیر متجلی هستی در خود درک میکنی یعنی بی ذهنی و حضور مکان و زمان بیرونی هنوز برای تو وجود دارند اما با اهمیتی بسیار اندک. دنیا نیز برای تو وجود دارد، اما دیگر نمیتواند تو را ببندد. بنابراین، هدف قایی جهان در خود جهان نیست، بلکه در استعلای از جهان است. درست همانطور که اگر اشیایی در مکان نبود، تو نیز نمی ادراکی از مکان داشته باشی. جهان نیز برای تحقق خود، به ذات غیر متجلی هستی، نیازمند است، جمله زیبایی از بودا نقل شده است اگر وهم نبود روشن شدگی نیز معنایی نداشت از طریق جهان و از طریق گنج نهان خود را میشناسد، تو هستی تا هدف الهی از آفرینش را تحقق ببخشی تو هستی تا جهان را همچون تو ماری باز کنی تو بی اندازه مهم هستی برگ آگاهانه غیر از خواب بیرویا که پیش از این در صحبت کردم معبر غیر ارادی دیگری نیز وجود دارد این معبر برای زمانی کوتاه در لحظه مرگ بدن گشوده می شود، حتی اگر همه فرصت های زندگیت را برای چشیدن بسیرت معنوی از دست داده باشی، یک معبر باقی میماند که بلا فاصله پس از مرگ بدن تو گشوده می شود. گزارش های بسیاری در دست است از تجربه کسانی که تا مرحله دم مرگ رفتند و به طور معجز آسایی، دوباره به زندگی بازگشتن. این تجربه برای آنها به صورت پرتو درخشندی یک نور احساس شده است. بعضی ها نیز از تجربه خود به عنوان احساس صفایی ملاتفت آمیز و آرامشی ژرف یاد کردند. احساس شکوه روشنایی بیرنگ توهیت که چیزی نیست مگر خود حقیقی انسان. این تجربه چند لحظه بیش نمی پاید و اگر در زندگی درکی مختصر از بعد ذات غیر متجلی هستی پیدا نکرده باشی احتمال دارد که فرصت این تجربه نهایی را نیز از دست بدهی بسیاری از آدمها به طور افراطی بار سنگین مقاومت، ترس، وابستگی به تجربه های حسی و یکسان انگاری خود با جهان صورت ها را به دوش می کشند. به همین دلیل معبر را می‌بینند، می‌ترسند، روی خود را برمیگردانند و آنگاه آگاهی خود را از دست می‌دهند. آنها به اندازه کافی حضور نداشتند تا جاودانگی آگاهانه را تجربه کنند. بنابراین عبور از این معبر به معنای فانی یا نابود شدن نیست. همچون عبور از معبرهای دیگر حقیقت نورانی تو باقی میماند. اما هویت و شخصیت تو فانی می شود در هر حال آنچه در تو واقعی است فنا نیز هست واقعیت هرگز از دست نمی آنچه ارزشمند و پربهاست جاودانه باقی میماند آستانه مرگ و فروپاشی صورت آستانه بیداری معنوی نیز هست بسیاری از آدمها این فرصت تکرار ناپذیر را از دست میدهند زیرا ما در دل فرهنگی زندگی میکنیم که مرگ را از حیطه آگاهی خود بیرون افکنده است این فرهنگ همه چیزهای با ارزش زندگی را از حیطه آگاهی خود بیرون افکنده است هر معبری معبر مرگ نیز هست معبر مرگ خود دروغین وقتی از معبری عبور میکنی دیگر هویت روانی و ساخته ذهن خود را خود نمی آنگاه انگاه در میابی که مرگ چیزی نیست مگر یک وهم همانطور که همزاد پنداری تو با صورت چیزی جز وهم نیست مرگ پایان توهم است مرگ فقط زمانی دردناک است که تو به توهم خود چنگ انداخته باشی حیفم می در اینجا این قزل زیبای مولانا در باره مرگ را نخوانم ببین او مرگ را چگونه می است به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد برای من مگری و مگو دریق دریق به دوغ دیو درفتی دریق آن باشد جنازم چو ببینی مگو فراق فراق مرا وسال و ملاقات آن زمان باشد مرا به گور سپاری مگو ودا ودا که گور پرده جمعیت جنان باشد فرو شدن چو بدیدی برآمدن آمدن بنگر غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد تو را غروب نماید ولی شروق بود لحق چو حبس نماید خلاص جان باشد کدام دان فرو رفت در زمین که نروز چرا به دانه انسان این گمان باشد کدام دل فرو رفت و پر برون نامد زچاه یوسف جان را چرا فغان باشد دهان چو بستی از این سوی آن طرف به گشا که های و هوی تو در جب لاغ مکان باشد. خوابطه روشن از هر جا که هستی به لحظه حال وارد شد من همیشه فکر میکردم که روشن شدگی حقیقی ممکن نیست مگر از طریق عشق بین یک مرد و یک زن، آیا همین عشق نیست که ما را کامل میکند؟ چگونه می شود بدون این رابطه عاشقانه به کمال زندگی دست یافت؟ آیا در زندگی خود حقیقت این فکر را تجربه کرده ای؟ آیا تا کنون عاشق شده ای؟ هنوز نه اما مگر ممکن است روزی عاشق نشوم میدانم که روزی عاشق خواهم شد به بیان دیگر تو منتظر حادثه در زمان هستی تا نجاتت دهد آیا این انتظار همان اشتباه اساسی نیست که درباره سخن گفتیم نجات در زمان و مکان نیست نجات در اینجا و لحظه ی حال اتفاق می افتد. منظور از این حرف که نجات در اینجا و لحظه حال اتفاق میافتد چیست؟ من معنای این جمله رو نمیفهمم حتی نمیدانم نجات چیست؟ بسیاری از آدمها به دنبال لذت مادی یا شکل گوناگون خوشحالی روانی می گردند. زیرا معتقدند که این چیزها می تواناند آنها را خوشبخت کند و یا از احساس ترس و کمبود برهاند. شاید بشود خوشبختی را اوج احساس زنده بودن از طریق دستیابی به لذتهای مادی دانست یا اینکه آن را احساس کاملتر و مطمئنتری از خود دانست که از طریق های روانی حاصل می‌شود. این فقط نجات از دست نارضایتی و یا بیکفایتی است چون این رضایتها و هایی همواره کوتاه و ناپایدارند بنابراین اینگونه آدمها ناچار باز رضایت خاطر و کامیابی خود را در آینده دور از اینجا و لحظه حال جستجو می کنند. وقتی فلان چیز و یا بهمان چیز را به دست بیاورم آنگاه حال و روزگارم خوب خواهد شد ذهن توست که توهم روزگار خوب آینده را می تا تو را از آنچه واقعی است و در اکنون و اینجاست دور کند روزگار خوب روزگاری است که با کامیابی آرامش و زندگی در ابعاد گوناگون آن میگذرد روزگار خوب آن است که تو خود باشی در درون خیش احساسی خوب داشته باشی شور و سرمستی بودن را تجربه کنی اینها چیزهایی نیستند که وابسته چیزهایی در بیرون وجود تو باشند در این صورت احساس روزگار خوب احساسی ناپایدار و گذرا نیست بلکه احساس حضوری جاودانه است به زبان دینی شناخت خداوند است نه به عنوان حقیقتی بیرون از تو بلکه به عنوان ذات بنیادی تو و همه چیز و همه کس نجات و رعصگاری حقیقی آن است که خود را جزء جدایی ناپذیر آن ذات یگانه بیزمان و بیشکل بدانی که همه چیز و همه کس از او جاری شدند نجات و رعصگاری حقیقی مرتبه وارستگی است وارستگی از ترس، از درد، از رنج، از کمبود از خواست و خواهش، از نیاز، از وابستگی، از چنگ انداختن به اشیا و آدمها. نجات و رستگاری حقیقی وارستگی است، از فکرها و دغدغ از تجلیات منفی فکر و احساس از گذشته و آینده به عنوان نیازی روانی، ذهن تو میگوید: تو نمی توانی از اینجا به آنجا برسی باید اتفاقی بیفتد. باید این یا آن بشوی. تا نجات پیدا کنی یا رعصگار شوی در واقع ذهن به تو می گوید تو به زمان نیاز داری باید پیدا کنی باید ریز و درشت کنی دست بیابی بشوی یا چیزی را بفهمی تا نجات بیابی یا رعصگار شوی انگاه زمان وسیله می شود برای دستیابی تو به نجات و رعصگاری در حالی که این حالت بزرگترین هجاب نجات و رستگاری است زیرا گمان میکنی از جایی که هستی و یا با وجود کسی که مکنون هستی نمیتوانی نجات بیابی باید کاملتر یا بهتر شوی تا مستحق نجات و رستگاری شوی اما حقیقت آن است که اینجا و لحظه حال تنها ای است که میتواند تو را به آنجا برساند تو به آنجا میرسی اگر بدانی که همکنون آنجا هستی تو زمانی خدا را پیدا می کنی که بدانی نیازی به جستجوی او نیست به تعبیر مولانا آنان که طلبکار خدایید خدایید حاجت به طلب نیست شمایید شمایید چیزی که نکردید گم از بحر جوید؟ کس غیر شما نیست کجایید در خانه نشینید و مگردید به هر در زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید خواهید ببینید روخم در رخ معشوق زنگارز آینه به سیقل بزدایید بنابراین راه نجات و رستگاری یک راه ویژه و منحصر به فرد نیست شرایط ویژه‌ای نیاز نیست. می‌توانی از هر شرایطی استفاده کنی و رسگار و کامیاب شوی. با وجود این، فقط از یک نقطه می‌توانی اقدام کنی، لحظه حال. بدور از لحظه حال، نجاتی متصور نیست. آیا تنها هستی و کسی نیست که دوستش بداری و دوستت بدارد؟ از آنجا به ساحت لحظه حال وارد شو. برای دستیابی به سعادت و کامیابی، چیزی جز لحظه حال را در دست نداری. البته این نکته قابل درک نیست برای ذهنی که میاندیشد. هر آنچه خوب و ارزشمند است در آینده قرار دارد. هیچ کاری که در گذشته انجام دادی و یا بر علیه تو انجام شده است نمیتواند مانع تو شود. مانع این که به آنچه هست آری بگویی و توجه خود را امیغم به لحظه حال معطوف کنی نمیتوانی این کار را در آینده انجام بدهی یا آن را در لحظه حال انجام میدهی و یا هیچ بر.